بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان ها می ها می من الله العزیز الحکیم این کتاب سوی خداوند عزیز به حکیم نازل شده است ما خلقن السماوات والأرض ما بينهما الا بالحق و مسمى مسمه والذین کفقو عما ما آسمان و زمین و آنچه در میان اندوس جد به حق و برای سرامد معینی نیافرندیم اما کافران از آنچه انتار می شدند روي كارتون هستان قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أعوني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين بنها بگو به من خبر دهید معبودهایی را که غیر از خدا پرستش می کنید نشان دهید چه چی چیزی از زمین را آفریده اند یا شرکتی در آفرینش آسمان ها دارند کتاب آسمانی پیش از این یا اثر علمی از گذشتگان برای من بیاورید اگر راست میگویید و من اضل من, من, من دون الله من لا چکتی گمراه تر از آنها که غیر خدا را پرستش می کنند که اگر تا قیامت هم آنها را بخوانند تا سخشان نمی و اصلا صدای آنها را نمی شنبند. و اذا خشغن ناتو کانون لهم اعداء و کانون بی عبادتهم کافرین ارگامی که مردم محشور می شوند معبودهای آنها دشمنانشان خواهند بود حتی عبادت آنها را انکار می کنند و اذا تکلا علیهم آیاتنا بیناتون كون الحلم النج جَاءَهُمْ هَذَا تخر م هنگامی که آیات ب ما بر آنها خوانده می شود کافران در برابر حقی که برای آنها آمده میکوکند این س آش کا است اون راقل سوته بل لدونمی من الله؟ شيئا؟ هو اعلم بما تیبون شیه کف و شهیدا بن وبنموبلکه بلکه میگویند، این آیات را بر خدا افترا بستند بگو اگر من آن را به دروغ به خدا نسبت داده باشم شما نمی توانید در برابر خداوند از من دفاع کنید او کارهایی را که شما در آن وارد می بهتر می همین بست که خداوند گواه میان من با شما باشد و او رفور و رحیمه قل ما كنت بدعا من الرسول و ما ادری ما يفعل بي ولا بكم این اتبع الا من پیانبر نوزهور نیستم و نمیدانم خداوند با من و با شما چه خواهد کرد من تنها از چیز پیروی می کنم که بر من وحکه می شود و جز بین دهنده آشکاری نیستم قل این کان من عند الله و به و شهر شهر و شهد شاهد من بنی اسرائیل علی مثله فآمن و استکبرتم این اللہ لا یهدیل قوم الظالمین بگو با من خبر دهید اگر این قرآن از سوی خدا باشد و شما با ان کافر شدید در حالی که شاهدی از بنی اسرائیل بر آن شهادت دهد و او ایمان آورد و شما استکبار کنید. بیگمان خداوند قوم ظالم را هدایت نمی کند. الذين آمنوا لو كان و لم یهجدون بهی فتیقولون کافران در مؤمنان چنین گفتند اگر اسلام چیز خوبه بود هرگز آنها بر ما پیشی نمی و چون خودشان با وسیله آن هدایت نشدند میگویند این یک دروغ قدیمی <تصفيق> و من قبلی کتاب موسی و آبا کتاب مصدق لسان عربی لیندر الذین و بشغال المفتنین و پیش از آن کتاب موسی که پیشوا بر رحمت بود و این کتاب همه با نشان های است در حالی که به زبان عربی و فسی و گویاس تا ظالمان را اندار کند و نیکو کاران را بشارت دهد. این کسانی قالوا ربنا الله گفتند پروردگار ما الله سپس استقامت بخار خرج دادند نفس برای آنها و گمی دارند اولئیک اطحاب الجنة قالدین فيها جزاء بما كانوا يعملون. آنها اهل بهشتند و جاب در آن میمانند این پاداش اعمالی که انجام میدادند و افغین الانسان بوالدین احسانا حملت ام هُوَ الَّذِي حَمَلَ وَوَضَعَ فِكْرَهَا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ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 ما به انسان توطیه کردیم که به پدر و مادرش نیکی کند مادرش او را با ناراحتی حمل می کند و با ناراحتی بر زمین می کتارد و دوران حمل و از شیر باز گرفتنش ما است تا زمانی که به کمار خودت و برسد و به چهل سالگی وارد کرد می گوید پروردگار مرا توفیق ده تا شکر نعمتی را که به من و پدر و مادرم دادی جا آورم و عمل صالحی انجام دهم ده که از آن خشنود باشی و با فرسندان مرا صالح کن من به سوی تو باز میگردم به با توبه میکنم و من از مسلمینم اولئیک الذین نتقبل عنهم احسن ما عملون و نتجاوز عن سیعاتهم في اصحاب الجنة الصدق كان آنها کسانی هستند که ما بهترین اعمالشان را قبول میکنیم و از گناهانشان میگذریم و در میان بهشتیان جای دارند این وعدۀ صدقی است که وعده داده می شدند اخرج و قرقلت این قرون من وهما يستغيثان الله و هما الله و وعد الله حق فیقول ماذا الا و بر شما او, أو من بعدم که من روز قیامت مبعوت می شدم در حالی که قبل از من اقوام زیادی بودند انها و آنها پیوسته فریاد می کشند و خدا را بیاری می تلبند که وای بر تو ایمان بیاور که وعده خدا حق است، اما او پیوسته می این اینها چیزی جز افتانه های پیشینیان نیست اولئی که الذین حق علیهیم القول في امم قد غلط من قبلهم من الجن والانت انهم كانوا آنها کسانی هستند که فرمان عذاب همراه اقوام کافری که قبل از آنها از جن و انت بودند درباره آنان سرد شده چرا همگی دیانکار بودند و برای درجاتا و اعمالهم هر کدام از آنها درجاتی بر طبق اعمالی که انجام داده‌اند تا خداوند کارهای آنها را بی‌کم و کاس به آنان تحویل دهد و به آنها هیچ ستمی نخواهد شد وَاَيُّهُم يَهْرُبُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَنَارُ أَزْهَابَتْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ امروز که کافران را بر آتش ارده می کنند، به آنها گفته می شود، از طیبات و لذایز در زندگی دنیای خود استفاده کردید و از آن بهره گرفتید، اما امروز عذاب بار به خاطر استکباری که در زمین بناهر کردید و به خاطر گناهانی که انجام می دادید، جزای شما خواهد بود. وَأَرْسَلَ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ قَلَّتْ نُذُرٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ هود برادر را با آنتمان که قومش را در سرزمین احقاف اندار کرد در حالی که پیامبران زیادی قبل از او در گذشته های دور و نزدیک آمده بودند که جز خداوند یگانه را نپرستید من بر شما از عذاب روز بزرگ می ترسم آل آل آل انها تو آمده ای جی عن الاتنا فاکنا بما تعدنا انت تمن القادرین ان تو آماده که ما را با دروغهایت هایت از خدایانمان برگردانی اگر راف میگویی اسادی را که به ما وعده می دحی بیاور ور انما العذ وعند الله وابلغكم ما ابتلت به ولكنني اراكم قوما گفت آگاهی تنها نص خدا من آنچه را به آن فرستاده شده ام به شما ابلاغ میکنم ولی شما را قومی بینم که دائما در جهل هستید فلما قبلا اوديتهم قالوا هذا عذابهم ممطرنا بل وهم به ريح فيها عذاب اليم هم كانوا كده با صورت ابر گسردی دیدند که بسوی در ها و آبگیرهای آنام در حرکت است خوشحال شدند گفتند این ابری باران را. این همان چیزی است که برای او آمدنش شتاب می‌کردید چون بادی بخشتناک که عذاب دردناکی در آن است. ثم چیز كل شيء فرمان پروردگار در هم می‌کوبد و نابوت می کند آنها صاب کردند در حال که چیزی جز خانه ها آنها و چه اش نمی خوفت این کونه مجرمان را که فرمی دهیم و لقد مکننا هم سیما ایم مکننا فیه و جعلنا لهم سمعا و ارقا فما أعلَنَ عَنْهُمْ تَمُّهُمْ وَلَا أَقْرَهُمْ وَلَا أَفْكِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآياتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَتَهذِّئونَ ما بقانها قدرت داديم كبشمال نداديم وبراويانها گوش با چاش و کان خراب داديم نه گوشها و چشمها و نه عقلهایشان برای آنها سودی نداشت چرا که آجات خدا را انکار میکردند و سرانجام آن را استهزام می کردند بر آنها وارد شد و اهلتنا ما, حولكم من القرى و لعلهم يرجعون ما اقوامی را که در اطراف شما بودند حلاک کردیم و اوجات خود را به صورت حوی کن و آنها بیان نمودیم. شاوید باز کتان فلولا نطرهم الذین اتخذون من دون الله طبانا آلهه بل ظلو عنهم وذلك ذالک وما كانوا ما پس چرا معبودانی را که غیر از خدا برگزیدند، به گمان اینکه آنها را به خدا نصیف می کند آنها را یاری نکردند و میان آنها گم شدند این بود نتیجه دروغ آنها و آن چرا افترا می بستند و ایت من الجن یا فلما قالون فلما قضی الى قومهم بیاد آور هنگامی که گروهی از جن را به سوی تو متوجی ساختیم که قرآن را استماع کنند وقتی حضور یافتند به گفتند خاموش باشید و بشنوید به هنگامی که پایان گرفت به سوی قوم خود باز کشتند و آنها را انترال کردند قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيمفتند أي قوم ما كتاب را استعما كردم ك بعد از موسالشه همه هنگ با نشانه های کتاب قبل از آن که بسوی حق هدایت می کند و بسوی راه را یا قومنا اجیب و داعی الله و آمین بهی یغفر من ذنوبکم و یجرکم من عذاب علیم ای قوم ما دعبت کننده ی الهی را اجابت کنید و او ایمان آورید تا گناهانتان را ببخشد و شما را از عذاب علیم فنا دهد و من لا یجب داعی الله فليت بمعجز في الارض وليت له من دونه اولیاء اولائی که في ضلال مبین و هرکس به دعوت کنین به یه الافی پاسخ نگوید، هرگز نمی تواند از چنگال عذاب الافی بر زمین فرار کند و غیر از خدا یارو یا بری برای اونی و چونین کسان در گمراکی آشکارند اولم یرو ان الله الذی قلق السماوات والارض و لم یعید قلقهن قادر علی این یحیی الموت و إنه علی آنها نمیدانند دانند که آسمان ها و زمین را آفریده و آفرینش آنها ناتوان نشده قادر است مردگان را زنده کند آره بیگمان گمان او بر هرچی توانا روزی یعرض الذین را بهیاد آورد که کافران را به آتش عرزه می دارند و به با آن ها گفته میشود آیا این حق نیست می و آری به ما سبگند ميجو جات فس عذاب راب بخاطر كفلتا بچاشي اصبر كما صبره العزم من الغوطل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبسوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يبلك إلا القوم الفاتقون بنابراین صبر کن آنگونه که فیامبران اولو العرد کردند و برای آنها شتاب مکن هنگامی که وعده هایی را که با آنها داده شد میبینند احساس میکنند که گویی فقط ساعتی از یک روز در دنیا توقف داشتند. این ابلاغی برای همگان آیا جز قوم فاسق می شوند؟